گل های خراسان، خراسان بر برنامه فکری تعلیمی و تربیوی. اگاه با که دختراگاهستری میکنه خلاف اسلام است میتونی بر من بگوی که کدام کدام داه یاد داری؟ داینم خوردن دعا از خاختندعا خاؤ کردن اینها اطفال شعران خلافتند اینها آینده درخشان خلافتند پایام برضی است که بیان به خلافت اسلامی و از گناهان تو بکنند بله بله اینها گل های که در کوه خشک جنگل های بی پایان و آواز های حیبتناک صلاح های سقیله به فکر و روحیه اسلامی تعلیم و تربیه را به دست می آورند به یک دستشان قلم و به دست دیگرشان شمشیر است در بمبوری بمباری یا جنگ میشه یا صدای تفنگ و صدای بمی چیزها را نمیترسی؟ نمی نه، همین نسل جهاد در تمام دنیا قرآن را حاکم می میکنند الله، دل گفته های اطفال خراسان دوشنبه شبها از رادیو صدای خلافت <تصفيق> طاغوت شيناسي طاغوت شناسي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا لانفصام لها والله سميع عليم اللهم ارحم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 داوم میکنه که بالا الله و تعالی ما ایمان داریم، بتهیت ایمان داریم، لکن قلبان تاقدرت دوست داشته باشد یا زبانم، می‌نداشت تاریخ می‌کرد باشد یا اماده از تاقدرت اطاعت می‌کرد باشد یا از جمله نواقض کلمه، از جمله نواقض ایمان. این برنامه را دوشنبه شب ها و چهارشنبه شب ها از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید. وحطم أباضي لأمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند العفق والكذبين الشينا من دهوي ومسلمون الراديو صداي خلافات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته به امیدین که از کاری صبح شام را فراموش نکرده باشید. شما را به برنامه طاقوت شناسی خوش آمدید میگم. من عبدالرحمن روحانی در خدمت شما هستم باز هم در این برنامه شیخ صاحب دهها را با خود داریم و به سوالات ما پاسخ خواهند داد. امید است تا پایانی برنامه ما را همراهی کنید. خب شیخ شخص در برنامه های گذشته روی جنبه های مختلف طقوت بحث شد حال اگر ما در اجتماعی کنونی نظر اندازیم در که بزرگترین فعالیت را و نفی طقوط همینین رسانه های انجام می دهند. و تعدادی از مردم با وجودی که می دانند قرآن و سنت حق است باس هم به دنبال همین رسانه ها رو هستند و چنان به تبلغات پوچ آنها گوش می دهند که گویا ایشان بر حق هند. آیا همین رسانه ها هم تاغوت شده می توانند یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم برادر محترم روحانی صحیح اول بعد گفت که همونطور که از سوال شما هم پیداست بین رسانه ها از نگاه آنش را که این و تفکیک موجود است. یعنی رسانه ها به دو قسم است رسانه هایی که از طرف و طریق یک مسلمان و یک موحد اداره می شود و عقیده توحید و شریعت محمدی و رسالت انبیاء علیهم السلام را ابلاغ میکند حکم این نوع رسانه ها مشخص است که جائز و طاقوت شکن طاقوت ستیز است و دوم امون رسانه هایی است که از طریق انسان های مشرک و یا انسان های لادین و لایک لا و یا انسان های مرتد نشر می شود که عقیده شرکی و عقیده ارتداد و حتی عقیده لایکی لا و کمونیستی را تبلیغ و نشر می کند برای مردم امروزه اکثر رسانه ها متاسفانه با انواع و اقسام خود رسانه های نوشتاری و با انواع و اقسام خود رسانه ها از طریق تواقید نشر می شود و نمایندگی عقیده تاغوت ها را می کند و به طور مطلق یعنی به این رسانه ها می شه گفت که این ها آلات و ادوات تاغوت هستند یعنی بلنگوی هستند که دست تاغوت است و عقیده تاغوت را با صدای بلندتر نشر می کند و به مردم و مخلوق می رسانند مثلا به طور مثال برای اینکه اونها عقیده تاغوت را نشر می کند که بگوییم مثلا برای خودشان اونها واجه های را ساختند از این واژه ها به عنوان ترفند استفاده مینه و مثل واژه آزادی بیان را بر خود آنها ساخته و از واژه آزادی بیان بر علیه آزادی مسلمان ها و بر علیه عقاید و ارزش های مسلمان ها آنها گستاخی مینه و حمله میشه از طریق همین رسانه ها هر نورسانه که باشند باز معلوم است که این کار کار تاغوت است، پشت سر این رسانه ها تاغوت است و اینها نمایندگی از عقیده ای تاغوت مینه و همچنین می بینیم که با استفاده از آزادی عقیده، از واژه آزادی عقیده بر علیه ارزش های مسلمان ها و بر علیه اولین شخصیت های مسلمان ها که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم است و صحابه بزرگوار او است رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بر علیه آنها در همین رسانه ها تبلیغات شده و اونها را طاغوت گفته کافر گفته توریست و مفسد گفته پس دلیل دوم میشه که این رسانه ها از طاغوت نمایندگی مینه و اونها ادوات طاغوت هستند و حتی متاسفانه امروز خیلی از رسانه ها که از آدرس مسلمان نشریات دارند از طریق یک مسلمان ظاهراً به نام مسلمان نشرات داره و کنترل میشه اونها فریزه مقدس بزرگ و مقدس اسلام که جهاد است این فریضه را ترور وحشت ظلم و استبداد جلوه میده برای شنوندگان خود یا برای بینندگان خود و برای خوانندگان خود و این در حالیه که آنها بدون معلومات بدون اینکه از مسلمان ها از واقعیت اونها معلومات داشته باشه یا بدون این که واقعیتی که الله مطال از جهاد و مجاهد بیان کرده و را درک بکنه فقط به نمایندگی از افواه کفار و از افواه مرتدین رسمی این مسلمان ها هم ایگپا را به نمایندگی از اونا باز میگه و عکس تاغوت را کافر و مرتد را و ظلم و استبدادی که اونا مینه بیدادگری و پرخاشگری اونها مینه باز اونها را عکس اونا را عدل، انصاف و داد جلوه میده برای مسلمان ها و برای انسان ها و ذهن مسلمان ها را منحرف مینه و مسلمان ها را تاری بر از اونا ذهنیت سازی مینه که شما از فریزه مقدس جهاد شما دوری بکنید و خود را نگه بداری و بیایید در صفحه تاغوتی در جاهایی که از تاغوت نمایندگی میشه و باز در از شما بکنید از این رو می توان گفت که این نوارسانها، ها امین نوارسانها. که از تاغوت نمایندگی مینه و عقیده تاغوتی را اون نشر داره و نشر مینه و بر علیه مسلمان ها یا بر علیه شریعت اسلام و یا بر علیه عوامر الله یا اوامر الله یا یک امر الله اگر رسانه بر علیه یک امر الله هم او اقدام بکنه و بر علیه زو گب بزنه و بر علیه زو تسمین بگیره باز این رسانه را میشه بگیم که این اعلی و ادوات طاغوت است و واجب الاجتناب است یعنی بر مسلمان ها لازم و واجب است طبق فرموده الله متعال که الله متعال بر ما شما انسان ها خطاب کرده برای ما مسلمان ها که امر کرده که شما وجدن بطاغوت یعنی عبد الله وجدن بطاغوت شما الله را عبادت بکنید و از تاغوت اجتناب بکنید لذا این رسانه ها هم واجب الاجتناب و بر مسلمان ها لازم و واجب که از اجتناب کنه و دور بشه از اونا. الله شما به خوبی میدونین در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه ها زمانی که اسلام تازه قدیرم کرده بود افرادی در صف شرک وجود داشت در قبیله مشرکین وجود داشتن بر علیه صحابه ها بر اسلامی که به رسول معظم اسلام نازل شده بود تبلیغات میکردن با شعر سرایی با خاندن ترانه ها مشابهت بین اونها و همین رسانه های کنونی در کجا است و تفاوت اینها در کجا است چیز مشخصی است که همون کاری که جاهلیت صدر اسلام می کردن و همین رسانه ها را وقتی که ما بینیم عیناً همون کار را کند فقط گپینه که اون زمان پیامبر علیه السلام و شریعت در حال نازل شدن بود قرآن در حال نازل شدن بود نفاق اونها را اعلان می‌کرد الله مطال و جاهلیت از اونها را بر مسلمان ها اعلان می‌کرد و باز مسلمان ها از ارشادات نبی کریم صلی الله علیه و در صدر اسلام برخوردار بود و باز اونها میفهمیدن که اینها منافق است کافر است مرتد است و اعمال شیطانی و ابلیسی است که باید از اونها پرهیز بکنه. و عال در این عصری که ما زندگی می‌کنیم باز مسلمان ها از ارشادات نبی کریم صلی الله علیه وسلم کمی به دور مانده و لذا آیات و قرآنی هم که بر ما نازل شده و بعضی از علما هست که مخصوص همو زمان می دانه لذا حال هم میشه بویی که همین رسانه هایی که بیهایی، فحشا، دروغ، تهمت بر علیه مسلمانها و مسلمان و تصمیمگیری بر علیه شریعت اسلام را انتشار میده و بگوییم که اینها عیناً همون کاری که جاهلیت قدیم می کرده و اینها نمایندگی از همون جاهلیت قدیم داره. ولی تشکر از معلومات جالبتان. آیا شما وندگانی شما می دانین که؟ در برنامه های گذشته ما در برنامه های منهاج تا منهاج و برنامه های مختلف روی دموکراسی صحبت کردیم دموکراسی یک نظام طاغوتی یک نظام کفر است و این ها به شکل آشکار حمایت خود از دموکراسی اعلان میکنه و رادیو آزادی یک پیام داره میگه رادیو آزادی حامی دموکراسی و ای رسانه ها خود اعتراف میکنه که حامی طاغوت هستند و حامی دموکراسی هستند به صورت شنوندگان عزیز امید است که قناعت شما حاصل شده باشد حال میریم با سوال بعدی در جامعهی کنونی احزاب گوناگونی به نامهای مختلف قدلم کرده و افرادی را دوربر خود جمع کردند مانند احزاب کمونیستی، سوسیالستی و دموکرات آیا همینها هم شد شده توانند شخصی به طور مطلق در مورد احزاب که مطلق احزاب و یا اقوام و یا دیگر اجتماعات، جامعه هم از مسلمان و غیر مسلمان را حاکم کرده نمیتوانیم که اونها طاغوت شده میتونه و بلکه از نظر عملکرد آنها و طرز اندیشه و عقیده آنها میتوان حکم کرد که این طاغوت شده میتونه و یا شده نمیتونه مثلا احزابی وجود داره و یا اقوامی وجود داره یا اجتماعاتی وجود داره به نام های سوسیالیست کمونیست دموکرات یقینا طاغوت در از اونها هیچ شکی نیست چرا چون طرز عقیده از و طرز عمل کرد از اونا و منشأ منهجی اونها کفر و لادینی و لایکیه لا لذا در اونا هیچ شکی نیست که اونها تاغوت است و اما کدام اجتماعاتی که از مسلمان ها تشکیل شده که خود را مسلمان میدانه و اجتماعاتی درست کرده به نام های مختلف حالا او اجتماع به نام مختلف حزبی است به یک نام حزب دیگر به نام دیگر در بین مسلمان ها خیلی زیاد است برای اینها باید متاسه بکنیم که اینها بر اساس شریعت اسلام همون تهبنا و سنگ تهدا به حزب خود را گذشته و یا عملکرد و اجراعات در مخاسم و محاکم خود کدام فیصله ها را اونها میکنه آیا فیصله بر اساس شریعت نازله الله متعال میکنه و یا از پیش خودشان کدام شریعت ساختگی است لذا اگر از پیش خودشان آنها شریعت ساخته باشد یعنی کدام فیصله ای که الله متعال کرده او فیصله را اونها عمل نکند همین حزب یا قوم یا اجتماع هر نامی که داشته باشه یا قریه یا یک سمت اتفاق بکنه که در یک موضوع ما بیایم که شریعت الله متعال را عمل نکنیم و باز اینطور طور و یا اینطور اجتماع اجتماعات را طاعت گفته میتونیم و بدین معنا که واجب الاستناب این از اینها یک مسلمان باید به طور وجوب و ضرور از اینها دوری بکنه و همچنین گپ اساسی اینه در زمانی که خلافت اسلامی در دنیا اعلان شد و خلیفه مسلمان ها تعین شد و بعد مسلمان ها از حالت گروه گروه و از حالت بی بیرون آمد و یک خلیفه شورای حل و عقد مسلمان های خلیفه را تعیین کرد و را والی امور مسلمان ها تعین کرد بازده هنگام کدام گروه ها کدام اجتماعات و کدام احزابی که به نام مسلمان هست حیثیت شرعی خود را از دست میده دیگه باز اونها به طور مستقل به طور مستقل از خلیفه اونها نمیتونه مشروعیت شرعی داشته باشه لذا اونها عاصم و گنهکار است که به طور مستقل از خلیفه برای خودشان حزب و گروه را تشکیل داده باشه و باز زمانی که خلیفه اگر اونها را درخواست کرد که خلیفه مسلمان ها اونها را درخواست کرد که شما بیایید تحت خلافت اسلامی و تحت یک خلیفه واحد یا امر واحد یا بیرق واحد شما بیاید اتفاق بکنید باز در این صورت اگر اونها سر بازد غلزت گناه از بیشتر شده غلظت گناه و غلظت نافرمانی از اونا بیشتر شده و بیشتر گناهکار است و اما اگر در مقابل خلیفه دست به توفنگ و شمشیر برد و موضوع گیر شد و جنگ را در مقابل خلیفه شروع کرد باز اینجا حکم تاغود بر از اونا داده می شد چرا؟ چون اینها مرتد شده حکم تاغود داده می شد و واجب الاشتنابه که از اونها اجتناب شده و هیچ مسلمانی باز بر از نزدیک نشده باشه جزاک الله خیران شیخ سپ سوال بعدی از این قرار است که فیصله های قومی حکمش چگونه است؟ اقوامی که موافق خواهشات قوم و ملت خیش فیصله میکنن حکمشان چیست؟ ما در جامعه میبینیم تو اقام وجود داره که شریعت مخصوصی نماز و روزه و زکات میدونه و در بخش های و در بخش های فیصله و قانونگذاری موافق خواهشات قوم و ملت خیش فیصله میکنن این چیز در جامعه به شکل گسترده وجود داره و ما شاهدش بودیم و حالا هم شاهدش هستیم حکمشان چیست در مورد اقوام خوب است که ملاحظه بشه زیرا مطلق قوم بودن یا اشیره بودن و قبیله داشتن در اسلام جرم نیست اما زمانی باز این قوم بودن یا عشیره بودن مجرم شناخته میشه که باز فیصله از او بر مخالف شرعه الله متعال باشه. وقتی که مخالف شرعه منظل الله باز فیصله بکنه باز اونا شناخته میشه و حکم در مورد از اونا میشه. مثل مثال روزه بزنیم که همیه پیش حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه که میگه ما فقط زکات نمیدیم دیگه کل امور اسلام را قبول داریم فقط تنها زکات را نمیدیم. اعلان میکنه که ما از دادن زکات عاجز هستیم باز حضرت ابوبکر صدیق فرد دوم مسلمان ها باز بر علیه از اونا جهاد اعلان می با به خاطر به خاطر یک موضوع که یک فرض الله متعال را اونا میگفتن که ما عاجز هستیم نمیتونیم اینو بکنیم انجام بدیم لذا اونها طاغوت شد و علیه از اونا جهاد شروع شد و جهاد کرد حضرت عبو بکر صدیق و در عمی زمانه که ما هم زندگی مینیم اگر کدام فیصلهی که یک قوم مینه یک اتفاق یک قوم مینه که مخالف شرع منظل الله باشه مخالف شریعت الله باشه باز هم خوب است که همین فیصلهی که مخالف شرع الله مطال کرده باز هم خوب است که ایرا دو تقسیم کنیم به طور آگاهانه و غیر آگاهانه یعنی یک قوم هست با وجود که میفهمه و یقین داره که حکم الله متعال در مورد زانی و زانیه محسن و محسنه رجم است یعنی یک زن محسن و یا مرد محسن که زنا بکنه اونا یقین داشته باشه که حکم الله متعال اینه که اونا باید سنگسار بشه باز اونا بر علیه با وجود اینکه موضوع خبرداره علا رقمی خبرداری خود دوباره چه کار فیصله دیگر اونا تصویب و تصدیق مینه که روی زناکار را سیا بکنه داخل بازار را چرخ بده و مرد زانیه را باز جرمزی به همین داده شده باشه سزای از او داده شده باشه لذایی فیصله باز مخالف نس سریع الله مطال نص سریع قرآن کریمه و مخالف شریعت اسلامه و همچنین مثل موضوع قصاص یعنی کسی که کسی را قتل کرده باشه الله مطال فرموده کسی کسی را قتل می باز از قاتل قصاص گرفته شده باشه قاتل عمدی باید او خودش قصاص شده باشه به جای مقتول او هم کشته شده باشه در شریعت اسلام ویایی که وارسین مقتول او را اف کرده باشه یا قصاص یا اف در شریعت اسلام برای قاتل همین حکم است باز یک قوم وقتی که بیای بشینه برای خودشان اتفاق بکنه به طور آگاهانه که ما به جایی که قاتل را قصاص بکنیم خوب است که یک دختر یا دو دختر از خود قاتل یا از قبیله قاتل بدون مهر یا با مهر اندک از اونا بگیری بازی دخترای مسلمان را باز بدین به قبیله مقتول بدیم یعنی در عزای این که الله متعال گفته شما قاتل را قصاص بگیرید از او یا او را عفو بکنید به جای عفو یا قصاص اینها دو تا دختر گرفته یا چند تا دختر گرفته و دخترها را داده به قبیله مقتول داده شما شاید دیشب بودین چیزی در زندگی در hayatتان ما به طور دقیق برای شما این را بگویم که در منطقه نیمروز اولسوالی خاشرود آدمی را که زنا کرده بود و روی از او سیا کرده بود در همی امارت اسلامی که متاسفانه ما هم در امارت بودیم که روی از او سیا کرده بود در بازار میچرخاندند و باز ما از همون روز ما را گریا گرفت که ما به خاطر شریعت اسلام اومدیم که اینجا شریعت قائم بکنیم حالا میبینید که مخالف اسلام ما حرکت مینیم و همچنین در دیگر منطقه ما دیدیم که به جای اینکه قاتل قصاص بشه و یا به جای اینکه قاتل افوه بشه باز از قبیله قاتل یک دختر یا دو دختر را گرفته برای قبیله مقتول دادن ولی موضوع خیلی جاها دیده شده و خیلی از شنونده و خیلی از مسلمان ها شاید دیده باشه این موضوع را و شنیده باشه این موضوع را که وقتی که باز فیصله ای تو شد زناکار رابطه رو آگاهانه رو از را سیاه بکنه به جای رج موضوع و قاتل رابطه رو آگاهانه به جای افیا قصاص از او دختر گرفته باشه باز ایتو قوم و ایتو تو فیصله ها فیصله های تاودیه و برای مسلمان ها واجبه که از این طور فیصله ها و این طور قومیت ها باز خود دور بدانه و دور بشه و همچنین غیر از قوم هر چیز یا هر عاملی که مانع امر الله بشه سد واقع بشه در مقابل اجراع شریعت الله مطالع که حالا زبان مزبان مردم باشه یا قوم مردم باشه یا حدود جغرافیایی مردم باشه یا فرهنگ مردم باشه او در حق همو انسان تاغوت میشه در حق همو انسان که او را منع کرده باشد از امر الله به طور مثال مردم انگلیسی زبان مسلمانان انگلیسی زبان فرضن به طور فرض به طور مثالی گفتم میگیم که نماز خواندن رایج نباشه باز یک انگلیسی زبان را میگیم نماز بخون باز او میگه در قوم ما ایف نماز خوندن رواج نیه در زبان ما در مردم انگلیسی زبان نماز خوندن رواج نیه دیگه احکامات اسلام را اجرامینه خود نماز نمیشه اجرامینه مردم نماز خوندن لذا ما هم میگه نمینا میگه پر نوز بی الله من زالک در حق همی تو انسانه باز این قوم و این زبان انگلیسی زبان بودن تاقود میشه باز واجبه که و همچنین یک قوم را میگین که شما مثلا مسلمانان خراسان یا مسلمانان قفقاز را میگین که شما برین به فریزه حج و حج را بکنید. باز اونا میگه که حج کردن مربوطه یا مخصوص قوم ما نیه قومی که در جزیره طول عرب زندگی مینه، در شام زندگی مینه، باز او قوم حج بکنه، حج کردن مخصوص از اونایه. لذا در حقیقتا انسان باز این حدود جغرافیهی تاقوت میشه و واجبه که از اینها پرهیز بکنه و خوره دور بگیره. و همچنان یک قوم برازو میگین که وقت جهاده و باز تو بیا جهاد بکن بزو بگویه که جهاد در منهج مانیه در قوم مانیه یا در زبان مانیه لذا برای او تا انسان ها لازم است که قید و بند و زنجیر قومیت زبان نجات و حدود جغرافیایی که مانع امر الله متعال بر شده از اینها دوری بکنه و واجب الاجتناب که از اینها به طور وجوب و ضرور از اینها دوری بکنه و قید و بند این فرهنگ و این زبان را از دست و پای خود دور بکنه و خود را متعلق به اینها نداند تا که از گناهی که معنی امرالله مطال شده بود از او گناه دور بشه تشکر شیخ سیم مترم در لحظات اخیر برنامه قرار داریم کدام پیام و گفتنی هایی به از عزیز خاصتا با کسانی که امین حالا صدای ما را از طریق موجی صدای خلافت میشنون کدام پیام داشته باشی اگر. برای تمام مسلمان ها و مخصوصا صاحبان رسانه ها و صاحبان اجتماعات و کسانی که صاحب احزاب است و یا خود را متصل به یک حزب و یک قوم میدانه و این دلیل شده بر زنا که به ساحه خلافت یا به سرزمین خلافت نیایه پیامم برای زنا اینه بیایید قید و زنجیر گرایی و قوم پرستی و حدود پرستی را از دست و پای خود بشکنید بیایید تلسم نمی شود و نمی توانم را از قاموستان پاک کنید. بیایید به جایی که امیر و مأمورش در یک سنگر بی سایبان بیایید به جایی که ارزش قطره آب وزویتان بالاتر از خون اوباما و و 200 کافر دیگر است و اینجا سرزمین خلافت است. تا شکر شیخ سیب محترم با این پیام جالبتان ما هم از حضور شما ندگان عزیز مرخص میشیم شنوندگان محترم این بود داشته های برنامه امشب تاغوت شناسی شما پیام جالبی را شیخ سیب در اخیر برنامه شنیدید امید است از داشته های برنامه امروزی مستفید شده باشید تا برنامه دیگر که باسم با معلومات جدید در خدمتتان قرار میگیریم همیتون را به الله لایزال میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکت در جستجوی حق, حق. بیایید که در جستجوی حق شویم و با کسان راه را بپیماییم که خود و دیگران را به طرفی جنت فرا میخونند اینها کسانه هستند که با کاروان خلافت اسلامی راه پیموده اند این همه را در برنامه در جستجوی حق فراموش نکنید جمشبها از رادیو سوی خلافت 90 فیلم نامی تصار برای مادر گفتنی ها و ناگفتنیها ها دیار غربت تاریخ هفت جمادی الاول سال 1433 هجری گوینده ابو علی ادهم این همه را از فرد دوستی و محبت می نویسم ای مادر محور نشتهایم صرف توی ای مادر مینویسم و میگیرم و از فراق از جدایی هایت و از دوری هایی که بین من و تو ایجاد شده است. مینویسم و خیلی ها خود را دور از محبتت احساس میکنم. می کنم مینویسم و امید کنم و استدعا کنم از ربم تا را در فضای دین و دینداری یک بار دیگر با خود داشته باشم. مینویسم و امید می کنم تا این داشته هایم به گوشت برسد پس از اینجاست آغاز می کنم سخن را ای مادر. ای مادر من به عنوان یک پسر متهمم چرا متهمم شاید پاسخ این سؤال را خودم برایت بدهم یا اینکه واقعاً واقعا من در نظر شما متهمم و یا جرم بزرگی را مرتکب شده و در حالت فرار هستم و شما مفتش معنوی هستی و در جستجو و مراقبت پسرتان هستی کدام پسر آن طفل دیروز در بدن مادر نوما تکلیف و نوما حمل واقعا مشکل و طاقت فرسا هست این همه چرا برای وجود یک نوزاد برای آمدنش در دنیا غم و اندوه، و تکالیف ها حتی در وقت تولدش خطر مرد شبها نشستن و بیدار و بیقرار و پستانش در دهن همان تفل این همه چرا باز هم لطف و باز هم مهربانی و باز هم شفقت برای چی؟ برای کی همان طفل نوزاد همان موجود پرسر و صدا و همان آشفتۀ خوابها و همان طفل محتاج و همان طفل بیشمور و بیخرد و ناتوان باز هم همه تکلیف و همه شبخیزیها برای مادر همه کارهای طاقت فرسا همه غم و همه ها متووجی امان مادر شبها بیقرار و روزها ناآرام برای چی برای کی برای کی همان طفله نوزار با امید شنیدن ادامه این نامه منحج تا منحج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 از توگیان و از حکومتهای ظالمان محضون مباش، باش محضون ما باش ما برگشتیم و انشالله هر پارچه ورقت را با خونهای متحر خود رنگین می‌سازیم، برگشتیم